دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن بسد به جانان یا جنز تن براید بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید بن مای رخ که خلقی والد شبند و پیران بکشای که فریاد از مرد و زن براید جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم خود کام تنگ دستان کیزان دهن برآید. گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازن هر جا که نام حافظ در انجمن برآید.